میخوانیم سوره مزمل را گرچه در این ترتیب گفتن سوره مزمل سومین سوره هست سوره مدسر را گفتن چارومین سوره هست این ترتیبی که هر روز بنده ارز میکنم این ترتیب مال علامه سیوتی هست اما اینجا علماء میفرمه اینجا دوچار اشتباه شده چونکه سوره, سوره تور را دومی سوره نون را دوامی قرار داد و سوره مزمل را سومی سوره مدثر را چهارمی در حالی که در احادیث صحیح داریم بعد از اینکه سوره علق اقرب بر رسول الله نازل شد تا چند وقت وحی نمی آمد سه سال فتره الوحی بعد از سه سال رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من داشتم می رفتم که از بالا صدایی شنیدم به طرف بالا نگاه کردم همون فرشته را دیدم بر کرسی بین آسمان ها و زمین نشسته و به من نگاه می کند من ترسیدم لرزیدم آمدم خانه به خدیجه گفتم که مرا بپوشان و خدیجه پتوی چیزی بر آن حضرت انداخت می لرزید که آیه نازل شد یا ای المدثر قم فاندر پس سوره مدسر بر اساس این روایت صحیح دومی دو هست سومی سو یا ایوه المزمل هست علا ای حال در سوره گذشته بحث توحید بود و اینکه که بغیر از الله هیچ کسی برکات دهنده نیست در این رابط دلائل عقلی و نقلی زیادی دلائل از جنات از پیغمبر خدا نوح بیان شد حال در سوره مزمل خدا می‌فرماید به تلاوت قرآن مشغول باشد و رتیل القرآن ترتیل یعنی این توحید را انسان از کجا گیرد از قرآن می گیرد لذا هدایت به وسیله قرآن حاصل میشه نجات به وسیله قرآن حاصل میشه بس سوره مزمل موضوعش قرآن است هم مزمل هم مدثر هر دوتا در رابطه با قرآن و تبلیغ قرآن هستند. و این سوره زمانی نازل شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم جامعه به خود پیچیده بود چادری به خود پوچیده بود و خابیده بود الله عزواجر این آیه را نازل فرمود این سوره را نازل فرمود که وقت خواب نیست بلند شو نماز بخون ابتداءن نمازهای پنجگانه فرض نشده بود نمازهای پنجگانه فرض نشده بود نماز تهجد بسیاری از علماء معتقدند فقط نماز تهجد فرض بود اما بعد از این که نمازهای پنجگانه فرض شد این فرضیت تهجد منسوخ شد لذا اینجا به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دستور داده شد یا ایوها المزمل ای کسی که جامعه به خود پیچی دی، قم اللیل شب برخیز یعنی همه شب را قیام و بعبادت سپری بکن بگزار بگزاران الا قلیل مگر مقدار کمی از شب مقدار کمی از شب اون قلیل چقدر هست؟ نصف هو مثلا نصف شب بخواب نصف دیگرش قیام کن عبادت کن اوین قسم منه قلیلا یا از اون مقداری کم کن یعنی نصف را نخواب از نصف کمتر بخواب یعنی یک سوم امام راضی گفته که مراد سلسل لیل است کمتر از نصف سلسل لیل یعنی یک سوم شب بخواب دو سوم شب بلند شو عبادت کن پس بیشتر شب عبادت کن کمتر شب چی کن بخواب اوزد علی یا بر این اقل بر این قلیل چیزی اضافه کن. یعنی یک سلس را دو سلس کن. دو سلس عبادت کن. ببخشید دو سلس بخواب یک سلس عبادت کن. اما عبادت که میکنی و ردت قرآن ترتیلا. قرآن را شمرده شمرده جدا جدا با وضوح و با تدبر و تفکر با رعایت تجوید بخوان رتل ترتیل همه این صورت ها را میگن این معنی رتل نیست از معنی رتل شمرده هست ولی مفهومش اینه که قرآن را چرا شمرده شمرده بخانه سرعت نخانه تا تجوید رعایت بشه تا در قرآن تدبر رعایت بشه فکر بکند از قرآن معیزه قرآن بگیرد لذا وردت للقرآن ترتیله از اینجا معلوم میشه که بهترین جایی که قرآن تلاوت بشه در نماز است و بهترین نماز نماز شب است بهترین نماز نماز شب است که انسان اونجا زیاد قرآن بخانه قرآن خواندن قرآن برای قیام اللیل هست قیام اللیل قیام به تراوی هم میگویند به تحجد هم میگویند خب تراوی فقط یک ماه رمضان هست در اون ماه ماشاءالله می گوش میکنند حافظان اما در ماهای دیگر در ماه دیگر بهترین وقت تلاوت و زمان تلاوت و ساعت تلاوت و مکان تلاوت وقت تهجد در نماز تهجد است این عبادت بیش از حد عجر داره سواب داره و باعث چی میشه باعث رونق در زندگی انسان میشه اگر حفاظ عزیز همیشه قرآن را بخانند در نمازهای شب هرگز قرآن فراموش نمیشه و خصوص خوهرانی که حفظ میکنند خوهران خب نماز تراوی ندارن برادران نماز تراوی دارن ولی خوهران در طول سال در این قیام شبشون در نماز تحجد بخوانند قرآن را شب یک جز حدی اقل بخانند هرگز قرآن فراموش نمیشه ما به جای اینکه تمام شب بخوابیم یک بخشی از روز بخوابیم قیلوله داشته باشیم اون ساعت را در شب ما بکنیم نماز شب بخونیم اما یک مسئله اینجا هست که آیا شما که بلند میشید برای نماز تهجد کثرت رکعات بهتره یا طول قیام بهتره مثلا شما در نیم ساعتی که اختصاص دادید تو این نیم ساعت میتونید 20 رکعت بخونیم میتونی 16 رکعت بخونی دوازده رکعت بخونی زیاد رکعات را سجده و رکوع را بیشتر بکنیم یا نه رکعات کمتر باشد قراءت را طولانی بکنیم بسیاری از علما گفتند کسرت سجود بهتره. اما قول محقق و قول درست و با توجه این آیه وردت للقرآن این هست که انسان قیام را طولانی بکند تادیر قرآن بکند به جا که بار بار سجده بکند در نمازهای دیگر سجده زیاد بکنید اما اینجا هرچی میتونه قیام را طولانی بکند چون که خدای از و فرموده وردت للقرآن در دیلا. اما عدد رکعات قیام اللیل هشت رکعت بیشتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میخاندند اما رسول الله از هشتا کمترم خواندند هشت رکت میخواندن سی رکت ویتر بود یازده در حدیث سیزده رکت هم آمده دو رکت مثلا تهیه الوزو میخواند در حدیث نه رکت هم آمده شیشتر قیام بودن و سیتا ویتر بودن چار رکت هم آمده چار رکت یعنی چار رکت با سی رکت هفت رکت و وقت تحجد را خدمت شما ارز کنم که وقت تحجد سه وقت میتونی تحجد بخونید یکی اینکه کسی بر خودش اعتماد نداره که بیدار بشه مثل طلاب که روزها درس میخونند و کارهایشون زیاد هست تا دیر وقت باید کتابها را مرور کنند تکرار بکنند اینها وقتی که میخوند بخوابند وقت خوابشون که رسید مثلا ساعت یازده ساعت خواب هست همون ساعت خواب نماز تهجد بخوانند یعنی از اون ساعت خوابشون نیم ساعت را بدم به نماز این تحجدی حساب میشه ابو حرره رضی و تعالیٰ نهو که طالب العلم مسجد مدرسه صفه بود جز اصحاب صفه بود ایشون میفرماند که خلیل من مرا وصیت کرد که من هر وقت میخوابم نخوابم مگر با وتر بخوابم یعنی چه اینها طالب العلم های مدرسه صفه بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم به اونها گفته بود که شما هر وقتی میخوابید ویتر بخونی خب قبل از وتر چند رکت انسان نفل میخوانه بعدا وتر میخوانه این تحجدی هست پس به قول شیخ الاسلام تحجد طلاب دانشجویان کسانی که درس دارند بیدار نمیتونن بشن تحجد اینها همینه اول شب بخونند. و تحجد دوم صورت دوم که اینم از حدیث ثابت است اینه که انسان نیمه شب بلند بشه و نماز تهجد بخونه هش رکت میخونه 6 رکت میخونه بیشتر کمتر بعد هنوز وقت زیاد دوباره بخوابه بعد نماز صبح بلند بشه این صورت دوم هست و صورت سوم چون بعضی از مردم معذوریت دارند شب مجبور بشن بلند بشن بعضی مشکل قند دارن بعضی مشکلات دیگه دارن که بلند میشن چند رکعت تحجد خودشون را بخانند و بعد بخوابند این هم یکی از صورت های سنت هست و صورت سوم اینه که آخر شب انسان بخواند. آخر شب یعنی قبل از اذان صبح قبل از طلوع فجر صادق انسان به اندازه تهجد بلند بشه، نیم ساعت، یک ساعت قبل از اون بلند بشه، نماز تحجدش را بخواند وترش را بخواند تمام که کرد، از آن صبح میشه، یعنی اون وقت بخواند بیشتر آن حضرت صلی اللہ علیہ خود ایشون در این وقت میخاندند. لذا این در رابطه با عدد رکعات تهجد بود، قیام اللیل بود، اما چون بحث قیام آمد، بحث تراوی هم هم یاد اینجا چون اونم قیام هست البته اون را میگن قیام رمضان ام المؤمنین آیشه رضی الله عنها روایت میکند که قیام رسول الله صلی الله علیہ وسلم در رمضان و غیر رمضان هشت رکت بود در رمضان و غیر رمضان منظور از این چیست تحجد است چون غیر رمضان چی نداره غیر رمضان تراوی نداره پس مراد از این قیام چی هست؟ تهجد است بعضی این حدیث را ذکر می کنند و میگویند که قیام یعنی تراوی هم باید 8 باشه نه خیر اونجا هست صراحتا در رمضان و غیر رمضان اما عدد رکعات تراوی در از کنم سنت حقیقت اینه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آن حضرت دو سه شب خواندند در حدیث صحیحی که تسریح شده باشه چند رکعت خواندن نیست فقط تا صبح میخاندن یعنی تا وقت سحر نماز ادامه داشت معلوم میشه رکعات زیادی میخاندن اما وقتی که دیدن خیلی حجوم شد مردم چنان آمدن که مسجد پر شد آن حضرت فرمود مخافتا این یفراز علیکم که از این بیم داشت که فرض نشه بعد مردم سس نشن نخاند سبه سوم بود یا شب چهارم بود از حجره خارج نشد گفت که برای خودش بخونه لذت زمانی که رسول الله حیات داشتند به صورت فرادا میخاندن در زمان ابوبکر صدیق هم البته صحابه گرو گرو جماعت جماعت میخاندن در زمان سیدنا عمر فاروق وقتی دیدن که جماعتهای متفرقی هست سه نفر اینجا جماعت میکنند چهار نفر اونجا جماعت میکنن، همه را جمع کرد و پشت حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی نگفت همه اینجا نماز بخونید همه یک جماعت خاندند و از اونجا به بعد هم دو چیز اینجا شد یکی اینکه قرآن مجید ختم می و یکی اینکه 20 رکت نماز خانده می شود. از زمان عمر فاروق عمل حرمین شریفین تا به امروز همین است تا به امروز همین است که بیست رکعت خوانده بشه بعدن مردم بعضی ها در اونها سستی آمد در اونها ضعف آمد از اون حدیث قیام اللیل و تهجد استدلال میگیرند و میگویند که هشت رکعت خوانده بشه من اولا یکی از علما از علمایی که این عالم تفسیر بزرگی نوشته علامه شنقیتی رحمه الله که این خودش خود ایشون از ارز به خدمت شما که علمای سلفی هستن ایشو میفرماید که اختلاف في قیام رمضان خاصتا درباره بقیه قیام اللیل اختلافی نیست 8 رکعت باشه 12 باشه 6 رکعت اما درباره قیام رمضان اختلاف هست و الاولی ان یوخذ بمرتزه السلف ایشو میفرماند نظر من اینه که ما که سلفی هستیم به نظر سلف عمل بشه نظر سلف چیه و قد قدمنا قدمنا في هذه المساله رساله عامه هي رساله التراويح میگه من در این رابطه یک رساله ای نوشتم خودم اسم رساله است تو اون تون رساله‌ای نوشتم افضل اولاتی هست می فرماید اکثر من الف عام في مسجد النبي صلی الله عليه وسلم بیشتر از هزار سال است که در مسجد النبی خوانده میشه و قد استقرر العمل عمل بر همین قرار گرفته بر همین جا افتاده على 20 فی رمضان بر بیس رکعت از رمزان بیش از هزار سال هست که بیس رکعت در مسجد النبی خانده میشه لذا ایشون میفرمید اگر ما خواهیم به مذهب سلف عمل بکنیم و اون که سلف ما انجام دادن سلف ما بیس رکعت نماز خاندن این بالاخره یکی از مفسرین معاصر هست که خدا رحمتش کنه فوت کرده ایشون نوشته لذا چون که بحث قیام آمد بحث تهجد را هم عرض کردم الله عزوجل وجل می فرماید که ورتل القران ترتیلا در این نماز نماز قرآن را بخوان شمرده شمرده بخوان و نماز را با جدا کردن الفاظ بخوان ان سنلقي علیک قولا ثقیلا ما بر شما القا میکنیم یک مسئله ای را که بنده باید یادآوری بکنم معروف است میگن که امام شافی از نظر اینشون تهجد 8 در بعضی از بلاد عزیزان شوافی ما میخونه این نسبت نسبت نادرستی است الان کسی اگر 8 رکعت میخواند بخواند اما بسیاری از علما نوشتند که یکی از مسائلی که ائمه چهارگانه درون اختلاف ندارم 20 رکعت تراوی است هر چار امام اهل سنت معتقدند که تراویح 20 رکعت خانده بشه هیچ کسی قائل به هش رکعت نیست ان سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا الله عز و می فرماید ما بر شما القامی کنیم سخن سقیلی قول سقیل قرآن مجید است چرا؟ چونکه مزامین قرآن مثل توحید مزامین حشر و نشت، بر مشرکین خیلی سنگین هستند. لذا از این جهت این قول قول سقیلی هست. بر مشرکین سقیل هست. ان ناشیت الليل هي اشهد وطن واقو مقیلا. الله تعالی میفرماید اینکه در نیمه شب قرآن خوانده بشه چون زمان انسان در واقع وقتی که بلند میشه استراحتش کامل شده زبانش به قرآن بهتر جاری میشه عدای الفاظ در روز انسان کلش هم خستگی داره هم حواس پرتی داره لذا می میفرمد این ناشیعت اللیلی هی اشد وطعن یعنی بلند شدن شب ناشیعت اللیل یعنی قیام شب بلند شدن شب هی اشد وطعن این بهتر است از نظر موافقت موافقت چی؟ زبان با قلب بعضی این تفسیر را کردند. اما بعضی گفتند نه. هی اشد دوتنا یعنی از نظر لگت کردن نفس چون نفس انسان لگت مال میشه سخت بر نفس میگذرد و اقوى مقوله. اما از نظر تلفظ قرآن از نظر قراءت و تلاوت قرآن بلاخره اون, اون لحظه اون زمان انسان راحتتر میخواند، روانتر میخواند. خاند لکه این لکه فی النهار سبحان طویل این علتش چون در روز شما مشغولیت طولانی دارید شما در روز مشغولیت طولانی سبحان طویلا، یعنی کار بسیار زیاد دارید تقلباً وتسرفاً في مهماتك واشتغالاً بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها في الليل يعني ايه پيامبر شما دار روز هميش مشغول شما وفود جهادين اعظام ميكون براي جهاد هایی که میان شما اونها را ملاقات میکنی وفودی که از جایه مختلف میکن مردم را آموزش میدی مردم را تعلیم میدی تربیت میکنی کارهای سنگینه لذا در اون لحظات که هیچ کسی نیست در اون لحظات به عبادت پروردگارت مشغول باش بسیاری از ماها شیطان فریب میده میگه که شما که خدمت داری میکنی مطالعه داری درس داری از صبح تا شب درس میدی یا میری تبلیغ میکنی برای مردم خب برای شما نماز به اندازه که فرائز ادا بشه سنن ادا بشه کفایت میکنه ببین نبی خدا رسول خدا که سید اولاد آدم هست او هم نیاز دارد در یک وقتی با ربش رب خلوت بکنه بقیه تمام خدماتی ما میکنیم اگر قبول پرورد در بار رب بشه اینها عبادت بالواسطه هستند اما نماز عبادت بلا واسطه است خصوص نماز در اون لحظه شب لذا خودمون را گول نزنیم توفیق پیدا بکنیم در اون لحظه نماز بخانیم الله عزوجل میفرماید که ان لک فی النهار سبحا طویلا در روز مشغولیت های طولانی داری لذا شب بلند شو شب بلند شو وذکر اسم ربک ربت را یاد کن و تبتل الیه تبتیلا تبتل یعنی ببر از خلق ببر از دنیا سوی پروردگار تبتیلا بریدنی یعنی چه؟ یعنی اون ساعت فقط و فقط مشغول خدا باش ای اخل صلح العباده مراد آیه اینه که عبادتت را در اون ساعت در روز انسان نمازی میخانه یک کسی در میزنه یه بچه گریه میکنه ماشین بوغ میزنه نمیدونه چند نفر با هم حرف میزنه همهش انسان حواسش پرت میشه اما اون زمان اون لحظه اگر واقعا کسی میخواد که توجه الالله بکند یک عبادت ای داشته باشه هم کسی, را، کسی انسان را نمیبیند و هم از این نوع مضاحمت ها نیست مفهوم آیه هم همین است. بسوی اون پروردگار اون پروردگاری که رب المشرق والمغرب است بسوی اون خودترا از بقیه ببر از بقیه منفصل کن از بقیه خودت را کن رب المشرق والمغرب اون پروردگاری که رب مشرق و مغرب است لا اله الا هو نیست هیچ معبود لایق عبادت به جز او فاتخذه وکیلا پس او را به عنوان کارسازت بگیر، او را به عنوان وکیل کارساز که مشکلاتت را حل بکنه، او را انتخاب کن. و بعد مردم هرچی میگوین بگوین، صبر کن، وصبر على ما یقولون، صبر کن بر چی که میگویند، وحجرهم حجران جمیلا، و ترک بکن، ترک کردن زیبا، یعنی درگیر هم نشو، سکوت کن، این آیات آیات مکی هست، فقط سکوت کن گوش کن و ذرنی والمکذبین اول النعمه اینجا زجر است بر اونهایی که اذیتت میکنن بگذار مرا با مکذبین با اون تکذیب کنندگان یعنی اونهایی که تو اونها را تکذیب میکنن اونها رو برای من خدا بزار اونهایی که اول النعمه هستند چرا تکذیب میکنن گاهی مال باعث غرور اونها میشه سرمایه و ثروت باعث غرور میشه اول النعمه معمولا انسان های مرفه با انبیا مخالفت میکنن نعمت را من به اونها دادم اما باز هم اونها تکذیب میکنن اونها را برای من بزار و محلهم قلیلا این مدت کمی اونها را مهلت بده چرا چونکه وقت وقتش میاد ان لدينا ان کلم وجه حکمت نزدما انکال هست یعنی غلاف و زنجیر هست و جهیما و جهنمی هست و طعامن غصه بعضی گفته انکال دستبند را میگن دستبندی که به مجرم میزنند و طعامن و همچنین طعامی هست که ذاغسته تنگلوگیر هست یعنی این طعام چنان تلخ خست و چنان خار داره که گلوگیر میکنه و عذابن علیمه عذاب دردناک هست این وقت عذاب کی میاد؟ یوم ترجف الارض والجبال روزی که بلرز در میای زمین و کوها و کانت الجبال و کثیبا مهیلا و می شود کوها در اون روز کثیبا یعنی ریگی توده ریگی مهیل روان ریگ روانی می وقت ریگها مثل آبها جاری میشن و می لذا اون روزی که عذاب میاد اینها را بزار برای من حال الله عزوجل می فرماید چرا این عذاب هست چونکه ما فر ما چنین رسولی فرستادیم و این رسول را نافرمانی کردند همان گونه که برای فرعون رسولی فرستادیم فرعون هم نافرمانی کرد انا ارسلنا إِلَيْكُمْ رسولا شَاهِدًا همانا ما فرستادیم به سوی شما پیامبری فرستادیم که شاهدا شاهد را قبلا چند بار ترجمه کردن یعنی بیان کننده بیان کننده حق هست این پیانبر کما ارسلنا الی فرعون رسولا همان گونه که ما فرستادیم بسوی فرعون رسولی فرستادیم یعنی موسا را فعصا فرعون الرسولا نافرمانی کرد فرعون رسول را فأخذناه اخزم و بیلا ما او گرفتیم گرفتن سختی سخت گرفتیم با شدت گرفتیم غرقش کردیم و به عذاب گرفتارش کردیم فکیف تتقون این کفرتم اللہ می فرمه اینجا تخویف اخروی هست چطور خود شما خودتون را حفاظت میکنید تتقون یعنی از خود محافظت میکنید اگر شما بعد از ارسال رسول کفر کردید چطور خودتون را از مصائب اون روز از عذاب اون روز محافظت میکنید یومن یعنی تتقون یومن از اون روز چطور پرهیز میکنید چطور فرار میکنید خودت را نجات میدی؟ از کدوم روز یا یجعل الویلدان شیبا اون روزی که چنان سخت است چنان مشکل است که بچه های کوچک را پیر میکند اونجا هیچ کسی بچه نیست ولی به اندازه سخت است که اگر بچه ها اونجا باشند یک شبه پیر میشه مویشون سفید میشه از سماء منفطرن به آسمان در اون روز پاره شده شکافته شده کان وعدو مفعولا وعده الهی شدنی هست اون وعده حتما میشه این ها دهی تذکر بعد از این که این مطالب بیان شد ف... این همه پندند این همه معزند نصیحت بلیغند فمن شاء تخذ الى ربه سبيلا هر کسی که می‌خواهد بسوی پروردگارش راه هدایت را راه نجات را بگیرد به این مطالب توجه کند این ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصف این بخش دوم سوره است این هم مربوط به اول سوره است. بسیاری از علماء معتقدند که بخش اول سوره فرضیت تهجد را اثبات کرد بخش دوم سوره اون فرضیت را منسوخ کرد یعنی تهجد فرض نماند چرا؟ چون که اونجا خداوند از زواجل فرمود که بیشتر شب بیدار شو کمتر شب بخواب اینجا می که شما دیگه کار دارید مشغولی بعضی از شما تو جهادی بعضی شما مسافرت، برای شما مشکل است لذا یک بخشی اگر بلند بشید و بخشی کوچیکی از قرآن بخوانید همین کفایتی تو میکنه بس این اون را منسوخ کرده اما شیخ بزرگاه شیخ حسین علی می فرماید این ناسخ نیست تخفیفی هست هر تخفیفی بهش نسخ گفته نشه ونجا ال ال اول الله عز و فرمود بیشتر شب بخوابید بیشتر شب بخانید کمتر شب بخوابید اینجا فرمود نه تخفیف هست میخوایید که اون حکم منسوخ نشده از بین نرفته این هم برای شما اجازه است که کمتر شب شما نماز بخونید خیلی هم معتقدن که تهجد ابتدائن برای رسول الله و برای امت برای همه فرض بود بعدا برای امت سنت مند برای رسول الله فرض مند به دلیل این که رسول الله تا آخر پایبند بود و اصلا تحجدش را قضا نکرد اما مسیاری از علماء معتقدند که آن حضرت صلی الله علیہ وسلم خودشون مقید بودند خودشون با پایبندی میخاندند و الا خیلی اوقات بود که آن حضرت صلی الله علیہ وسلم هم تحجد نمیخاندند مثلا ام المومنین عایشه می هر شبی که پیغمبر خواب می رفت برای نماز صبح بیدار می شد اما جایگزین تهجد بعدن که روز بالا می زد آفتاب بالا می زد دوازده رکات یا هشت رکات می خواد. و در روایت دیگری از شبی که رسول الله در مزدرفه تشریف آوردند تهجد نخاندند عمدن نخاندند تحاجی ها بدونند چون از عرفات تا مزدرفه پیاده که بالاخره این شب میتونن که به بقیه اعمال به بقیه از کار اوراد مشغول بشند. لذا اینکه آن حضرت نخاندن این خودش دلیل بر این که بر آن حضرت فرض نبوده. اما بعضی میگن فرض بوده و اینها دلایل دیگه داشته. علا ای حال این ربک یعلم انک تقوم ادنه. همانا رب تو می که شما بر می خیزید ادنا من سلوثی اللیل کمتر از دو سفو می شب. کمتر از دو سفو می شب شما بیدار می شید برا و نصفهو کمتر از نصف و سلوثهو کمتر از یک سفوم حتی و طائفة من الذین معك و یک گروه از آنهایی که با شما هستند هم بلند میشن و نمیتونند که تمام شب بیدار بشند والله يقدر اللیل و النهار شب روز را خداوند حد و اندازش را تعیم میکنند مقدر می فرماید لذا اینا همه مقدمه هستند برای حکم بعدی که خدا صادرش میکنند علم اللن تحسو ہو خدا می فرماید که خدا میدوند که شما نمیتونید تونید کنید تمام شب را تمام شب را در بر بگیرید فتاب علیکم پس بر شما رجوع کرد خدا بر شما رجوع کرد فقر او ما تیسر من القرآن بخانید اون اندازه که از قرآن برای شما میسر است هر اندازه که میتونید معلوم میشه که تهجد با قراءت قرآن خیلی ارتباط داره چون خداونده عزواجل بحث قراءت را آورده هر اندازه که برای شما میسور است برای شما آسانه برای شما ممکن است بخوانید. فقر و ما تیسر من القرآن علمان سیکونو منکم مرضا این دلیل دیگر فتاب علیکم هست چرا خدا رجوع کرد تخفیف داد به شما مسئله را آسان کرد تر کرد علمان سیکونو منکم مرضا الله میداند که انقریب بعضی از شما مریض خواهند بود وآخرون يضربون في الأرض بعض ديگر از شما هستن كي يضربون في الأرض مير من زمين يعني تجارت مي يضربون في الأرض يضربون في الأرض كناية سفر سفر مي يبتغون من فضل الله سفرشون چه سفر يست؟ سفر تجاري يبتغون من فضل الله معلوم شيء كي تجارت عمل مباركي هست تجارت عمل مبارکی هست که اون مالی که شما از راه تجارت به دست میاری بشرتین که شرایط تجارت را رعایت بکنید تاجر صدوق و امین باشید صادق باشید امانتدار باشید خائن نباشید با مردم و اعتماد مردم که به شما میکنن خیانت نکنید صادق باشید راست باشید دروغ نگید کل نکنید لذا اگر صادق بودید امین بودید هر چی که گیرتون بیاد این فضل خداست این لطف خدا پس تجارت واقعا عمل مبارکی از کار خوبی هست چون که در تجارت هم به شما نف میرسه هم به مردم نف میرسه به شما نف میرسه چون به شما پول بیشتری گیرتون بیاد ده میلیون رفتی جنس خریدی شدن دوازده میلیون به مردم نفت میرسه شما مایحتاج مردم را داری فراهم میکنید از فلان شهر میرید برنج میاری از فلان جا روغن میاری از فلان جا بقیه خوراکی هار میاری احتاج مردم را اگر بالخصوص انسانی که تجارت میکنه و این انگیزه را داشته باشه اینکه برای اجر و ثواب هم میشه که من این کار را میکنم تا نیاز مردم برطرف بشه لذا ببینی خداون می فرماید یبتغون من فضل الله اونجا در سوره مبارکه جمعه هم خاندید که یبتغون من فضل الله وابتغون من فضل الله پس نفعی سودی که از راه تجارت سالم شما بدست بیارید اون فضل خداست اون لطف خداست یعنی اون حلال شیر مادرست و آخرون یقاتلون فی سبیل الله بعضی از شما مریض بعضی از شما مسافر تاجر بعضی از شما مجاهد و آخرون یقاتلون فی سبیل الله دیگرانی هستن که در رای الله می پس برای همه اگه گفته بیشه که بیشتر شب بیدار بیشند مشکله پس چیکار کنید. کرید فقرعو ما تیسر من بخانید آنچه که میسر میشه از شب هرچی که برای شما ممکنه چار رکعت بخانید حاش شرکت بخوان، شی شرکت بخوان، بخوان، کم بخوان ولی بخوان، و اقیم الصلاة و آت الزکات و اقرض الله قرض حسنا. خداوند بعد از این مسئله تهجد، اصول موفقیت و اصول فوز را به هم میفرماید. برپایی نماز، اقیم الصلاة، نماز را برپاییداریت. و آت و زکات بدهید بعضی معتقدن که در منظور زکات زکات مال نیست زکات نفس چرا چون سوره مکی هست هنوز زکات فرض نشده زکات در مدینه فرض شد ز... گرچه بعضی میگن نه حکمش در مکی فرض شد ولی توضیح و تفصیلش بعدا در مدینه توضیح داده شد پس اگر زکات نفس باشه بمعنى توهيد است يعني خودت رأى از شرك پاک بكون قد افلح من تزكى انسان موافق کیه خودش رأى از شرك و کفر از نفاق پاک بگرداند بس اقيم السلاة ابن عباس تفسير کرده اي لا اله الا الله يعني معتقد باش هیچ خدای بجزء الله نیست و الله قرضا حسنا و صدقه بدهد به خدا قرض بدید قرض حسنه بسیاری میگن اقرضت الله قرض حسنا بیشتر به بی اون صدقی اطلاق میشه که در راه جهاد باشد برای اعلاء کلمت الله فی سبیل الله برای مجاهدین برای اینکه صفوف مجاهدین بپیش بره مالتون را خرچ کنید به خدا قرض حسنه بدید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوهو عند الله هر چیزی که شما تقدیم کنی برای خودتون نه تنها نماز نه تنها پول و صدقه بلکه هر چی از اعمال صالحه یه خرمائی بکسی بدی یک کلمه زیبایی کسی بگویی دل کسی رشاد بکنی هر کاری بکنی کوچک یا بزرگ پیش خدا میبینی وما تقدمو لأنفسكم من خیر آنچه که برای خودتون تقس... تقدیم میکنید از هر خیری تجدوه عند الله پیش خدا میابید هو خیرا و اعظم او بهتر، یعنی پیش خدا بهتر و باعث اجر عظیمتری میبینید امام رازی گفته قال ابن عباس تجدوه عند الله خیراً و اعظم و من مناللزی تواخیروه الى وسیعتکا اندالموت ببینید شما دونو اعمال دارید یا دونو صدقه دارید یکی اینکه اعمالی که شما جلوتر اونها رو میفرستید صدقهی که جلوتر میفرستید یکی اینکه بعدن وسیعت میکنید پشت سر ما اینقدر گسفن بکشید به فقرا بدهید به مدرسه دینی کمک کنید می فرماید اون چیزی که شما جلوتر میفرستید از اونی که پشت سر میگذارید چه چه برای بچهات میذاری چه برای فقرا میذاری می کنی اونی که جلوتر فرستادی بهتر است هر دو صدقه است هر دو اجر داره اما کمال در این است که الان صحیح هستی سالم هستی نیاز به مالداری، داری مال را خرج میکنی اما وقتی مریض میشی میبینی که مال برای دیگران میره اون وقت خرجش میکنی اونم خوبه ولی این دیگه چیزه بس قال ابن عباس تجدوه عند الله خیرا و اعظم اجرا هر چیزی که جلوتر بفرستی پیش خدا خیر میبینی و اجر بیشتری میبینی منالذی تواخره الى وسیعتک عند الموت از اونی که مؤخر میکنی به وصیتت یعنی وصیت میکنی او را این موت که بعد از من این کار را بکن نعمو اولی بهتره و استغفر الله این رفع عجب است در هر کاری از خداوند مغفرت بخواهید و الله تهجد تحجد یه وقتی تو دلت غرور بیاد من تهجد میخانم بعد صدقه میدی در دل بیاد من پول در رای خدا اللهم فرم استغفر الله یعنی تکبر نکن همیشه از خداوند مغفرت بطلب ان الله غفور و رحیم بدون شک خداوند بخشاینده و مهربانه صدق الله مولانا افیق